داستان بپر کیسم یکی بود یکی نبود اون قدیم قدیما تو کوهستانای بی و علف نیلو پدری با دوازده تا پسرش زندگی میکرد قهتی بود یه روز پدر به دوازده تا پسرش گفت پسرای من دیگه توان نون بردم برای شما رو ندارم بهتر از اینجا بید یه جایی دیگه شاید اونجا وضع بهتری پیدا کنید یازده تا پسر آماده رفتن شدن اما پسر دوازدهم شروع کرد به گریه و زاری به پدرش گفت من که شلم پدرجان یکی از پاهام درد میکنه من چجوری با این پا میتونم خرج زندگی خودم رو در بیارم پدرش گفت گریه نکن جون. با یازده تا برادرت میری هرچی که اونا به دست آوردن به تو هم میدن خلاصه دوازده تا برادر به هم قول دادن که هیچ وقت همدیگر رو تنها نمیذارن راه افتادن و رفتن بعد از یکی دو روز را رفتن که برادر کچکتره همش جا میموند از بقیه برادراش روز سوم برادر بزرگتر گفت این فرانچسکو همش عقب میمونه برامون خیلی دست و پاگیر شده بهتره همینجا بذاریم تا بمونه برای خودش هم بهتره چون بالاخره کسی رو پیدا میکنه که دلش براش بسوزه و بهش آب و غذا بده برادرای هم قبول کردن دیگه منتظرش نموندن راهشونو گرفتن و رفتن از هر کسی که میرسیدن گدایی میکردن تا اینکه رسیدن به بونیفاچو تو فاچو یه قایق کنار اسکره بود. برادر بزرگتر گفت به نظرتون بهتر نیست که سوار این قایق بشیم و بریم به ساردینیا. شاید اونجا کمتر گشنگی بکشیم. برادرای دیگه طبق معمول به حرف برادر بزرگترشون گوش کردن. همه با هم سوار قایق شدن و براه افتادن. و های تنگه که رسیدن طوفان شدیدی شده بود. قایق انقدر به سخراها و سنکا خورد که هزار تیکه شد و هر یازده تا برادر غرق شدن. حالا بشنوید از فرانچسکو همون برادری که پاش درد میکرد و بقیه برادراشون رو تو جنگل رها کردن. فرانچسکوی بیچاره چون نتونسته بود برادراشو پیدا کنه شروع کرده بود به گریه و زاری. بعدش هم همون گوشه خوابش گرفته بود یه پریه مهربون که از بالای درخت داشت ماجرا رو تماشا میکرد وقتی که فرانچسکو خوابش گرفت از درخت پایین اومد و رفت و علفهایی رو که میشنخت چید و یه مرحم درست کرد بعدم اون مرهم رو گذاشت روی پای فرانچسکو بعد هم همون جا خودشو به شکلی پیرزن پیر زن داره و منتظر نشست. فرانچسکو از خواب بیدار شد. شد که رابی افته. اما یه دفعه دید که دیگه لنگ نمیزنه و مثل بقیه ی راه میره. چشمش به پیرزنه افتاد. ازش پرسید خانم شما احتمالا یه حکیمی رو این دور اطراف ندیدین؟ حکیم؟ با حکیم چیکار داری؟ میخوام خوام ازش تشکر کنم. باید حتما حکیم حاضقی بوده باشه که تونسته پای لنگ منو درمون کنه. پیرزنه گفت: پسرجون، جون، کسی که پای تو رو درمون کرده منم چون که تمام علف‌ها رو حتی علفایی که بتونه پای لنگ تو درمون کنه میشناختم. فرانچسکو شاد و خندون به گردن پیرزن آویزون شد و هر دو تا لپاشو ماچ کرد. بهش گفت مادر بزرگ چجوری میتونم ازتون تشکر کنم؟ این بخچه رو بدین تا من براتون بیارم. خم شد که بخچه پیرزن رو برداره. اما وقتی دوباره بلند شد زیباترین دختری رو که میشه تصور کرد به جای اون پیرزنه دید. دختری که مثل علماس میدرخشید. با مای طلایی که شونهاشو بود. لباس ابریشمی لاجوردی با دو تا ستاره از سنگ قیمتی روی هاش. فرانچسکو با تعجب افتاد روی پای پری پری گفت پاشو پسر جون چون آدم قدشناسی هستی کمکت میکنم. دو تا آرزو بکن تا برات براوردش کنم یادت باشه که من ملکه دریاچه کرنوام پسر یکم فکر کرد و بعد جواب داد آرزو میکنم که یک کیسه داشته باشم که هر چیزی که من میگم توش جا بگیره. پریم گفت این که چیزی نیست من همین الان اون کیسه رو برای فراهم میکنم یا آرزوی دیگه بکن. دوباره پسر گفت دوست دارم یه چوب دستی داشته باشم که هر کاری که بهش دستور میدم انجام بده. پری تو یه چشم به هم زدن آرزوهایی پسر رو برآورده کرد. بعدشم قیبش سند. پیش پای فرانچسکو یه کیسه و یه چوب دستی ظاهر شد. پسر شاد و خندون خواست امتحان کنه. چون خیلی گشتنش بود، فریاد کشید یه کپ که بریون بره تو کیسه. و همون لحظه یه کپ که رفت تو کیسه. یکم کم نونم بره تو کیسه. یه بطری نوشیدنی هم بره تو کیسه. و خلاصه اینجوری بود که اون روز فرانچسکو یه نهار حسابی خورد. بعد از خوردن نهار بدون اینکه لنگ بزنه راه افتاد. فردای اون روز رسید به ماریانا. تو ماریانا قوی ترین و قهار ترین جمع شده بودن. فرانچسکو هیچ پولی نداشت. کیسهش دستور داد که همین الان صد هزار تا سکه بره تو کیسه و کیسه پر از سکه شد. همون موقع تو ماریانا شایع شد که شاهزاده فرانچسکو که به خاطر ثروتش اسمرس می داره وارد شهر شده. اون زمان ماریانا از جاهای مورد علاقه شیتون بود. شیتون خودشو به شکل جوون جوان و رو در آورد، چون میتونست توی بازی همه رو شکست بده و روحشون رو بخره تصمیم گرفت که به سراغ فرانچسکو بره چون شنیده بود که یه غریبه اومده توی شهرشون که ثروتمندترینه ترینه به خاطر همین با یه لباس مبدل رفت سراغ فرانچسکو وقتی رفت پیشش بهش گفت جناب شاهزاده جسارت منو ببخشین به که به حضورتون اومدم اما انقدر تعریف شما رو شنیده بودم که نتونستم از آرزوی دیدن شما چشم پوشی کنم. فرانچسکو گفت خجالت هم میدید، اما راستش نه تنها من بازی بلد نیستم بلکه حتی دست به این بازیام نزدم. اما بدم نمیاد که با بازی کنم. مطمئنم از یاد میگیرم. گیرم. از این ملاقات اونقدر خوشحال شد که موقع اجازه مرخصی برای ابراز احترام دقت نکرد و یه پاشو همچین دراز کرد که سومش معلوم شد. فرانچسکو با دیدن این صحنه گفت بحبه این که همون شیطونه که به دیدنم اومده. خب باید حقش رو بذارم کف دستش. خلاصه شیطون و فرانچسکو از هم خداحافظی کردن. وقتی که فرانچسکو تنها شد دستور یه شام مفصل و به کیسش داد. فردای اون روزم رفت تا به شیتون بازی کنه. مردم همه جمع شده بودن. ولول ای به پا شده بود. فرانچسکو راه و باز کرد و رفت ود. یهو چشمش به جوونی افتاد که خونالود کف زمین افتاده. مردم براش تعریف کردند که اون اومده بود که بازی کنه ولی توی این بازی دارو ندارش رو از دست داد. به خاطر همین هم. یه چاقو تو قلب خودش فرو کرد و جونش از دست داد. قیافه یه همه ی که اومده بودن تا اونجا بازی کنن پکر و ناراحت بود. اما فرانچسکو متوجه شد که یه نفر اون وسط داره میخنده. شیطونی رو که به ملاقاتش اومده بود دید و شناخت. شیطون هم گفت یالا این بدبخت رو از اینجا برید بیرون میخوایم دوباره شروع کنیم به بازی کردن. فرانچسکو حتی بلد نبود. با اون کارتا بازی کنه. حتی اونا رو تو دستش بگیره. خلاصه اون روز هر چی که با خودش آورده بود و باخت. روز دوم یکم یاد گرفته بود که بازی کنه. ولی بازم باخت. روز سوم دیگه دستش را افتاده بود. اما اون روزم بیشتر از روزای قبلش باخت. همه فکر میکردن دیگه به خاک سیاه نشسته. اما برای فرانچسکا هم مهم نبود چون به کیسهش دستور میداد و هر چقدر پول میخواست به دست می آورد اینقدر باخت که شیطون به خودش گفت اگه پول دارترین آدم روی زمینم بود تا الان باید بدبخ می شود. به خاطر همین فرانچسکو رو برد یه گوشهی و بهش گفت جناب شاهزاده نمیدونید چقدر متاسفم که شما بعد اقبالی آوردین اما خبر خوشی براتون دارم اگه به حرفم گوش کنین میتونم نصف اون چیزایی رو که باختین رو بهتون برگردونم شیتون یه نگاهی به دروبرش انداخت و آروم بهش گفت روحتون رو به من میفروشین شاهزاده فریاد کشید پس این نصیحتیه که به من میکنی حالا که اینجوریه تو کیسه شیتون پوسخندی زد و خواست فرار کنه اما موفق نشد و با سر افتاد تو کیسه فرانچسکو فرانچسکو هم سریع در کیسهش و بست و به چوب دستی خودش دستور داد. حالش جا بیار. چوب دستی شروع کرد به بزدن. تو کیسه به خودش میپیچید و زار میزد. داد میزد و میگفت بزار بیان بیرون. بسته وگرنه میمیرم. فرانچسکو هم بهش گفت بله میمیری. فکر میکنی که بعدی که بمیری. و چوب دستی هی میزد و هی میزد. دو سه ساعت بعد، بعد از یه مشتمال حسابی، فرانچسکو گفت دیگه برای امروز بستشه. خوب گوش کن، اگه میخوای که آزادت کنم، باید فوراً تموم اونایی که از دست تو بازی کردنات خودکشی کردن زندهشون کنی. شیطونم قول داد که این کارو انجام بده. بعد از اینکه شیتون قول داد، فرانچسکو اونو از تو توکیسش آورد بیرون و بهش گفت یادت باشه هر وقت که بخوام میتونم بگیرمت شیتون خوب مواظب بود که سر قورش وایسه قیبش زد رفت تو زیر زمین و همه اون جوانای بدبختی رو که توی بازی ازش باخته بودن رو بیرون آورد جوانای رنگ پریده با چشای تب زده فرانچسکو به اون جوانا گفت دوستای من شما به خاطر بازی کردن به خاک سیاه افتاده بودین اثر سر بدبختی خودتون کشته بودین من بهتون کمک کردم که دوباره زنده بشید اما دفعه بعد رو دیگه نمیدونم میتونم این کار رو براتون انجام بدم یا نه هم بگین اگه زندتون بذارم قول میدید که دیگه دنبال این بازی نرید جوون بیچارهم به فرانچسکو قول دادن که دیگه این کار رو انجام نمیدن فرانچسکو به هر کدوم از اونها هزار تا سکه داد. بعدش هم بهشون گفت که برن و از زور و بازوی خودشون نون در بیارن. جوان زنده شدند و همشون شاد و خورم رفتن کنار خانواده فرانچسکو همون لحظه به یاد پدرش افتاد. راه افتاد به سمت دهگردشون. اما توی راه به پسری برخورد کرد که از ناامیدی دستشو به هم میپیچوند فرانچسکو با خوشحالی رفت جلو و بهش گفت چی شده پسر جون چونقدر ناراحتی و عقب کردی من حال ندارم بخندم آقا مگه چی شده پدرم هیزوم شکم بود و تنها نونآور خونه است اما امروز از بالای درخت افتاد پایین و یه دستش شکست رفتم شرط تا براش دکتر خبر کنم اما دکتر میدونست که من فقیرم به خاطر همین به خودش زحمت نداد که دنبال من بیاد. فقط همین؟ خب اینکه نگرانی نداره. یه فکری براش میکنم. شما دکترین؟ نه اما میتونم براش دکتر بیارم. اسم دکتر چیه؟ پسر جواب داد. دکتر پانکراتیزو. همون لحظه فرانچسکو به کیسش گفت. دکتر پانکراتیزو به پرتو کیسم. و یه دکتر با تمام لوازم پزشکیش افتاد تو کیسه بعدش هم فرانچسکو به چوب دستیش دستور داد حالا حالشو رو جا بیار. و چوب دستی هم شروع کرد. دکتر بیچاره هی داد میزد کمک هم کنی. کنید رحم کنید. فرانچسکو بهش گفت قول میدی هیزوم شکن و مجانی درمان کنی؟ دکتر هم گفت هرچی بخواین قول میدن. حالا من از کیسه بیارید بیرون و همون لحظه دکتر از کیسه آوردم بیرون و دکتر بیچاره رفت بالای سر هیزم شکن فرانچسکو راهش رو گرفت و رفت بعد از چند روز به دهکدش رسید اونجا گشنگی بیشتر از قبل حاکم بود فرانچسکو همون لحظه به کیسهش دستور داد که یه مرغ بریون براش آماده کنه یه بطری نوشیدنی فرانچسکو تو دهگدهشون تونست یه مهمون خونه درست کنه که همه میتونستن اونجا مجانی غذا بخورن این کارش تا آخر قحطی ادامه پیدا کرد وقتی که دوباره فراونی شد فرانچسکو دیگه از این کار دست کشید چون باعث تنبری مردم میشد با این همه کارهایی که فرانچسکو انجام داده بود ولی خودشو آدم خوشبختی نمیدونست. به خاطر اینکه خبری از یازده تا برادرش نداشت خیلی غمگین بود. اون دیگه کار بدی رو که برادراش باهاش کرده بودن بخشیده بود. یه بار دیگه یه درخواست از کیسهش کرد. بهش گفت جوونی برادرام بپر تو کیسه. یهو یه چیزی توی کیسه تکون خورد. فرانچسکو کیسه رو باز کرد و نگاه کرد یه مشت استخون بود فرانچسکو اسم یکی از برادراش صدا کرد پاولو بپر تو کیسم یه مشت استخون دیگه توی کیسه تکون خورد فرانچسکو هر بار اسم یکی از برادراش صدا می کرد. رسید به برادر یازدهم ولی جز یه مشت هیچ هیچی دیگه پیدا نمی کرد. شک نداشت که برادراش مدت ها پیش مردن فرانچسکو خیلی ناراحت و دمق بود حتی پدرش هم مرده بود و اون تنها مونده بود و یه روزم رسید که فرانچسکو هم پیر شد تنها آرزویی که قبل از مرد داشت فقط دیدن پری دریاچه کرانو بود که برای اون بخت آورده بود به خاطر همین راه افتاد و رفت به همون محلی که برای اولین بار اون اونجا ملاقات کرده بود منتظرش شد اما هر چی انتظار کشید پری نیومد التماس میکرد و صداش میکرد کجایی ملک یه مهربون یه بار دیگه خودتو من نشون بده میخوام یک بار دیگه قبل از مردنم تو رو ببینم اینقدر اونجا منتظر شد که هوا تاریک شد برای هیچ اثری از, از پری نبود اما در عوض مرگو اونجا میدید که داره از جاده رد میشه توی دستش یه پرچم سیاه و توی دست دیگهش داست بود به فرانچسکو نزدیک شد بهش گفت خب پیر مرد هنوز از زندگیت سیر نشدی؟ به قدر کافی کوه و دره ها رو زیر پا نذاشتی بختش نیست که با همه چیز خداحافظی کنی و با من بیای؟ فرانچسکو که حالا پیر شده بود جواب داد آهای مرگ دنیا رو بله به قدر کافی دیدم و ازش استفاده کردم از همه چیز سیر شدم اما قبل از اینکه با تو بیام باید از کسی خداحافظی کنم یه روز به من مهلت بده اما مرد بهش گفت اگه نمیخوای کافر بمیری دعاهاتو بخون بعدشم عجله کن و دنبال من را بیفت پیرمرد دوباره گفت التماست میکنم تا صبح به من فرصت بده و دست نگهدار مرگ گفت نه فرانچسکو پیر گفت حداقل یه ساعت بهم به فرصت بده حتی یه دقیقه هم نمیتونی فرانچسکو گفت حالا که اینقدر سنگ دی پس بپر کیسه. مرگ به خودش لرزید. استخوناش هر کدوم به اون یکی میخورد. نتونست از پریدن تو کیسه خودداری کنه. همون لحظه پری ظاهر شد. نورانی و جوون مثل گذشته. فرانچسکو گفت از از سپاسگذارم پری مهربون. به مرگم گفت از کیسه بیرون بیا و منتظرم باش پریه مهربون گفت آقای فرانچسکو از قدرتی که بهت داده بودم سوء استفاده نکردی کیسه و چوب دستی تو برای امور خیر مصرف کردی میخوام جبران کنم به من بگو چه آرزوی داری؟ فرانچسکو گفت دیگه هیچ چه ندارم پری گفت میخوای پادشاه باشی؟ فرانچسکو پیر گفت دیگه هیچی نمیخوام سلامتی و جوون میخای داشته باشی؟ فرانچسکو دوباره جواب داد تو رو که دیدم دیگه راضیم و میتونم بمیرم پریم بهش گفت خداحافظ فرانچسکو قبل از رفتنت اول کیسه و چوب دستی رو بسوزون و هم پری غیب شد فرانچسکوی مهربون آتیش بزرگی درست کرد و اول یکم اونجا گرم کرد خودشو. بعد هم کیسه و چوب دستی رو توی آتیش انداخت تا کسی از اونها استفاده نادرست نکنه. مرگ اونجا بود. پشت یه بوته. داشت به کارای پیرمرد مرد نگاه میکرد. منتظر بود تا پیرمرد مهربون رو با خودش ببره. آیا تا به حال آرازو کردین گوه؟ سرزمین های سه را سفر کنیم جایی که پری و کتوله ها زندگی می‌کنند. کانال هزار افسان همونیه که دنبال جایی که داستان های و ی اصطوره سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا. سفری Okay. <laughs>